هر روز می پرسی که آیا دوستم داری من جای پاسخ بر نگاهت خیره می مانم تو در نگاه من چه میخوانی؟ نمیدانم اما به جای من تو پاسخ میدهی آری ما هر دو میدانی چشم و زبان پنهان و پیدا رازگویانه و آنها که دل به یک دارند حرف ضمیر دوست را ناگفته می دانند ننوشته می خانند. من دوست دارم را پیوسته در چشم تو می خانم. ناگفته می دانم من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمیپرسم. هرگز نمی پرسم که آیا دوستم داری قلب منو چشم تو میگوید به من آری سلام من مصطفیم و اینجا رادیو هجده بنفشه دخترکی که این بار اومده تا براتون از یکی از قدرتمندترین موجودات جهان صحبت کنه موجودی که با یه جرقه به وجود میاد و با یه جرقه خیلی چیزا رو به وجود میاره شاید با خودتون بگین دخترک ما کوچیکتر از اونه که بتونه از این چیزا سر در بیاره بتونه بفهمه فهم کار کرده این موجود بزرگو دخترک همیشه ها بنفش ما شاید کوچیک باشه ولی خوب میفهمه معنی مهربونی و دوستی و اینجا رادیو 18 بنفشه و شما به اپیزود چهاردهم از فصل دوم اون گوش میکنید اپیزودی که قرار تقدیم شه به قدرتمندترین موجود این عالم موجودی که دلا رو با اومدنش عوض میکنه و امید و با این کش بزرگا به روح آدمیزا تزریق میکنه این اپیزود با افتخار تقدیم میشه به زیباترین چشمای دنیا که با بودنشون دل و روح رو پر امید میکنه و زندگی رو دیگر گفت. تاریکی چشمانت را جستم در تاریکی چشمهایت را یافتم و شبم پر ستاره قفس چیه؟ من به شما میگم. قفس چیزی نیست جز پادشاه ازدادی که اسماعی لبن حماد جوهری یادش رفته. این واژه رو به عنوان پادشاه و یا حتی ملکه تمامی ازداد بیاره تو کتابش. اصلا قفس چیه؟ جز افکاری که ما رو به قهقرا یا کنده از تلخی میکشونه. قفس. قفس به نظر من چیز بدیه. چیزیه که سنگینه و بعد چند وقت بر اساس نظریه داروین بالات و پوچیک و کپکو و سراخر خشک و پودر میکنه آره قفس چیزی نیست جز ما ماهایی که با حرکات و افکار و حرفامون دیگران رو خشک میکنیم اونا رو آزار میدیم پودر میکنیم چون مثلا چیزی رو دوست نداریم دیگری هم نباید اون رو انجام بده اصولاً این افکار قفسی توسعاً زیل تکبر با احساس خودبزرگبینی مفرد و خودخواهی مزمن قرار می‌گیرند. شاید بگید این که همش بد شد. پس از داد بودنش کجاست؟ آره قفص همونطور که مخرب و پلیده از اون طرف خوشگله و مهربونه و خوب. مثلاً قفصی که درش بازه دیگه قفس نیست. یه خونه است. که میتونی توش شم روشن کنی و به اون نگاه کنی قفسی که پر از شیشه های رنگی پنگی دیگه بد نیست اصلا قفسی که درش بازه و بنفشه و شیشه های رنگی پنگی داره که دیگه قفس نیست وقتی توی یک قفص با اون کسی که دوستش داری باشی دیگه قفس نیست ماهیت قفس هم عوض میشه توی یک چشم به هم زدن اینطور که نگاه کنی عشق هم دیگه قفس نیست بلکه پر پروازه اینطور دیگه عاشق زندانبان بالهای معشوق نیست دیگه قفس میله نیست و شکنجهگاه بلکه محل آرامش و زیبایی اگر زمان و مکان در اختیار ما بود ده سال پیش از طوفان نو عاشقت می شدم و تو می توانستی تا قیامت برایم ناز کنی یک سال به ستایش چشمانت می گذشت و سی هزار سال صرف به ستایش تنم و تازه در پایان عمر به دلت راه می آدم. از وقتی که کمی عقل رس شدم، فهمیدم که فراموش کردن بهترین کار دنیاست است. قشنگترین چیز دنیاست است. حتی قشنگتر از زیباترین چشمهای دنیا. ولی مشکل اینجا بود که مفت و مجانی که نمیان این بهترین کار و قشنگترین چیز دنیا رو بدن مثلا به ما. بهجاش یک علامت گنده نشونمون دادن گفتن اکی؟ باید دونست که فراموشی رابطه کاملا مستقیمی داره با به فنا رفتن به این شکل که اگر نتونی فراموش کنی، امروز به فنا میری. فردا به فنا میری. پس اون فرداها هم مطمئن باش که کماکان به فنا میری. اصلا میشی یک به فنا رفته در فراموش نکردن اصلا یه مکتبی هم داریم با یک مانیفست بسیار بسیار قدرتمند و بسیار بسیار منطقی نام این مکتب فراموشیسمه اصولا فراموشی درمان تمام درد هست باور کن فراموشی درمان سرطان هست درمان ام هست درمان میگرن هست درمان افسردگی هم هست میگن توی خارجستون یه دوایی هست به نام قرص فراموشیسترین 500 هر هشت ساعت یکیش رو با یک لیوان آب پرتقال یخمال میندازی بالا و بعد از یک دوره سیتایی کلن میشه یک موجود خوشبخت جدید. بعضیام هستن که خدادادی آنزیم فراموشی رو بدنشون ترشح میکنه. همچین خیلی خودجوش و مردونه میگن این موجودات ارزشمندن مکانیزم اثر آنزیم فراموشی تو بدن اینطوریه که این آنزیم در ابتدا سنسور بیخیالی رو تو بدن کاملا فعال میکنه بعد با این سنسور کاملا رفیق ندار میشه و میرن یکی یک علامت گنده نشون تمام بدن میدن و همه رو شیر فهم میکنن که فقط خوش بگذرونن. و یه سری کلاس زمن درمان دایورد به یک جاهایی رو هم برای مغز و قلب میذارن. وای به حال کسی که نه بدنش آنزیم فراموشی ساز ترشح کنه و نه پول خرید دواش رو داشته باشه اون وقته که هی به فنا میره و میمونه تو فکر همون زیبا ترین چشمان دنیا من گونهام را به گونه شب نهادم و صدای گرم و زنگدار تو را شنیدم زیرا که انگشتانم به دور انگشتان به معلق در فضا پیچیده شد و من رایه پر راز حضور بی نظم تو را به نزد خود کشاندم اتفاقی ممکنه یه معجزه باشه بدترین اتفاق برای ما ممکن حلقه ای از یک زنجیره بلند باشه برای تحقق مجزه برای دیگران بهتر اینجوری بگم که برای تحقق معجزه هم نیاز هست به تحقق مجزه دیگه برای این که مثلا ما به دنیا بیایم یه معجزه لازمه به دنیا اومدن ما باز میشه خودشی معجزه شاید قلز ها با هم فرق بکنه ولی هست هست بودنو که نمیشه انکار کرد کوچیکترین اتفاقا ممکنه با غیر و غمیششون وسط زندگی یه آدم اونو نجات بدم و یا حتی نابود کنن هر کدوم از ما و اعمالمون ممکنه حلقی زنجیر یه معجزه خوب و یا بد و نابود کننده باشیم برای زندگی دیگران به قول مرحوم جاله اسفهانی زندگی صحنه یک تای هنرمندی ماست هر کسی نقمه خود خانه و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست تو کجایی؟ در گستره بیمرز این جهان تو کجایی؟ من در دور ترین جای جهان استادم کنار تو تو کجایی؟ در گستره ناپاک این جهان تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان استادم بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای با چشمهایت حرف دارم. می خواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگویم. از بهار، از بغزهای نبودنت، از نامه های چشمانم که همیشه بی جواب ماند. باور نمی تمام این روزها با لبخندت آفتابی بود. اما دلتنگی آقوشت رهایم نمی کنه. براستی عشق بزرگترین آرامش جهان است صدایت میکنم از پشت هنجره یک قناری از بالهای یک پرستو منتظر میمانم چشمانت را بدوزی بنگاهم که من این گونه به اعتماد؟ نام خود را با تو میگویم کلید خانهام را در دستت میگذارم شادی هایم را با تو قسمت میکنم به کنارت مینشینم و بر زانوی تو این چنین آرام به خواب میروم کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای های خیش با تو درنگ میکنم هممون شاید اصلا همونطور که بیگانهی در دهکده مارک توین گفت یه سری آدم گلی باشیم که یه موجود بزرگتر تر ساخته و داره با همون بازی میکنه و اصلا شاید ماها هممون اسباب بازی یه موجود فرا سوپر زمینی هستیم ولی من ترجیح میدم که یه معجزه باشم من مصفا بودم و شما به میکسی از نوشته های رادیو هجده بنفش گوش دادیم نوشته هایی که همشون با هم توصیف موجودی بودن که مثل اثر انگوش میمونه و مستقیم راه داره به دل این اپیزود با افتخار تقدیم میشه به زیباترین چشمهای دنیا چشمهایی که باید اسمشون رو بذاریم کلید قفص و معجزه و راه دل و امید و امید و امید شما میتونید ما رو در کانال تلگراممون با نام رادیو هجده بنفش با هجده عددی و بخش پادکست های دنبال کنید. مهربون باشید و شاد و مهربون والله که من عاشق چشمان تو هستم والله که تو با خبر از این دل زاری مهمان خیالم شده ای هر شب و هر شب والله شبیه من دیوان نداری حقا که مرادی و مریدت شده عمل. آقا که تو خورشید زمینی اَسمانی ها شو که به غیر از تو کسی در دلم هستم هم, و هم سر و هم بی بی‌سر هم این و عیانی <تصفح> ای ها اگر یار بخاهی یا نباشم ای به من جرت مرا یار ندانی باید <تصفح> به تو زنجیر کنم بند دلم را جانی و جهان I تر از ماه تر از ماه جا ام کنی خاو که داره درجهت هستم ای شاه تر از شاه تر از شاه تر از شاه ای نور تر از نور تر از نور تر از نور ای ماه تر از ماه تر از ماه تر از ماه جا ام خونی خاو که داره در گهت هستم ای شاه تر از شاه تر از شاه تر از شاه. پیهات اگر یار بخواهی و نباشم ای وای به من کرتا مرا یار ندانی باید به تو زنجیر کنم بند دلم را جانی